شیطان بسم الله الرحمن الرحیم والحمد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله و آله طایبین طایبین المعصومین و لعت الداریمت از چند روز جادریت و کاسریت عمل مشهور یعنی فتواه مشهور شد و توضیحاتی نجو به کلمات مطلب شد خلاصی وقتی رو که در نفیجه چندنگی هست از در این در این آقایی که بر از مکمه انزامت سردی کردن شهرت و عشقات فتواه و ضربت و براتی جادری یا کاسر بدونن بیشتری نظرشون به یک نوع تعبد یعنی خبر خرافینی نفسه حجت بوده یا حجت نبوده به خاطر شوبهات فتاوا و عملی بهم مثلا ما تعبد به قبولش داشته و از صدوری که ما الان از مجموعه شواهد کاملا برای ما واضحه نکته بر تعبد اصولا نمیبینی مثلا جای بحث مساله تعبد اصلاً نیست معظم عموری که در اینجا مطرح میشه این ها بسیار بخشمی در فقه و اصول و حدیث ما دارن نیازی به که بگیم تعبودت شان تصویر دادن به خبر ضعیف اونو قبول بکنیم یارد بکنیم مذر نیست اون نکات اساسی که آن با در مد نظر داشت این مسئله یک این که ما بگیم حدیث صحیح یعنی مجب به اعلاق اون از تو جیهت مدازه خودیم تصور نادرسته ارز کردیم اون که مجموعاً از شواهد درست کردیم که در ثابت نشارشان واضح شد عهد سنت شد از وجود قرن سوم بوم هر آخره برمه و هر آخره برمه سه بوم, برم در در بوم, برم سه بوم حدیث صحیح رو مطرح کردن که یعنی هنه حد نظابه همه درمه تسرند الى آخر سند خب از طبیعتاً نبرم مثل اونکه به روایات تا اون زمان بوده. بعد که برگشتن به بررسی روایات به با این مطلب برخورد کردم که فکر رو از روایات این ظابط سند برش مفرق ارز کردیم از حدود سالهای صداپنجا در این بنده می شما اینیت کرد قدود به سالهای صداپنجا این بخش شروع شد تنقیه از حال روات گفته شده در مصادر عامه قبل از این دیگه خیلی بحث نمیکردم، من پشتر بود کارو مثلا آقا مسلمان نمی کرده درست. یا مثلا ناغلین اولیه که صحابه بودن که قدور می توستن ناغلین هم که تابعین بودن از تابعین جلوهد و بعدش هم باز افراد جلوهد مثلا از بادم و بزرگان خیلی نیازی, نیازی به بحث رجالی نبود. از سالهای های سال و که یه زیاد شدن و یه مقدار بحث و با هم خرد شدن نیازی به بحث رجالی پیدا کردن بزار از فرمی نوشتن اولوان فتح شهند رجال به یرا شبه اهل بحث های بود سد،, سد و شسته یا سد و سه این مثلا حدود های سال های و این کار شروع شد خب تا پنجاه سال بعد از اینها به این نتیجه رسیدن که اگر خبر رو دیونیم راویش عبل زابط باشه عبل زابط این حجت محسوسن که با تاسف که که در ذهنشون بعد ملتفض شدن که گاهی میشه که سنر عبل زابط عبل زابط هست با مشکل برخورد میکنه اصلا یه نفر نفر کرده لزابط. بعدها احتمالا در سالهای دویست و پنجاه دو دو قیر هم اضافه کردن یکی اینکه شاس نباشه یک نفر نقل نکرده باشه دوم اینکه دارای عینی در سند دا متنش نباشه این دو قید رو اضافه کردن چون احساس کردن با اون زابطه قبلی منتت تمام نمیشه به مشکل برخورد کردن این دو قید رو اضافه کردن این دو قید این شد که باید شدوز نباشه و علتی این چه در سندش چه در متنش نباشه که از کردیم شاید مجموع شباهد نشون بده از نیمه های برن دوم این استلاح به نهر سنت رایج میشه پس این آمدن این دو قید رو روی خود تعریف صعیح صحیح نه اینکه اگر شدود بود صحیح رو خالج میکنه, میکنه. و بهتی هم اون که در از ما اتفاق افتاد اولا این تعریف رو در برده هشتون گرفتن بود. اون دقیق رو و و هم نگوردن و که این با همون دقیق مطلع شدن بود. املا که واقعیت بود می آمدن بیدن اگر می دونیم امامی در کمی طبقات باشه رو باید کسی نم نگرده تقوانه دادن بشه و این واقعیتی رو که باش برسورد کردن اون چیه در میانه هست ما محضر شد متاسفانه این شد که اینجا متاسفانه این اقضاقی آمدن دید رو گذاشتن رو حجی گفتن حدیث سهی اما بجرد نیست سبوت از حجی نه بگرد کنم روشن شد, شد فرمین با تباعت زمان لذا بردهای دیامنه بودنه اگر این صدیه را وجده چرا سو بودن پس در حیرت باید این گفت در واقع فقه خارجی چه و میششیه این واقعیتی موجود بود با اینکه این که مثلا تفضل که برای حدیث صدیه میگرسن ممکن بود حدیث صدیه باشه راوی سره باشه زبز باشه یا باشه, آه باشه. اما خلال شاس باشه یا یه این بیه خلالی در سندش یا متنش باشه یه واقعیت با رو احناس کردن سونیا همون اول این دوگه رو دخلید در سلیم گرسند چون سلیم پیشون ها مسابه با خود شد علمه هایی ها متاسفانه این, این دوگه رو رو نتیجه بیشد که حدیث با این دوگه هم سلیم بود این اگر معروض هم بود سلیم بود چازم بود بود اما خب این اقلاعی او اونجا در وقتی مسئله تحمل شهرهی که توش نبود روایت که نبود آیه که نبود که شازن باشه آیه که بود که خبر عادل قبول وقومی شوشی بود شاز و محروف که تو آیه نبود تو روایت نبود توساندن نبود پس انا این خود در قبل پرمد قنم گفتن این سعیه لکن بخاطر خاطر اعماق هو جیات می‌افتد یا زعیفه لکن به خاطر عمل هو جیات دیر می‌گردد آدمی که دارد آماده است از سال مدرک داشتن مکم و است اما سر موسی ایست تظیریم به جایی ام که گفتن سر به به جایی که باری نمی‌آید و کنن تماسه بسیار اول کنن با این کمبود با کسی نداریم که برای اون بگی شد که خبر سر حجت چرا یه از حجید منتازه؟ یا خبر زعید نیست چرا عمل کردن برای اون حجید؟ بسن تو بست بس؟ پس در حیقتت اون که مشهور علمای ما بعد از اندام فرق می با اون که مشهور علمای عهد از خبر سوم نیمه های دوبارم قرد سرخان در چی بود یعنی کلمات و اصطلاحات جا شده بود روشن شد اونا موشتر بختن موشتر و اغلاقی. و تعجب اینه که در مسئله شاز ما روایت داریم اونا ندارم ما از امام صادق و داریم و خود به موجمره و خود به شهر رویی نصفاوی و در شاز نادر فیر ند موجمره ما بفید لیکن انجیبیه که از خواب ما از این راه وارد نشده این پس در حقیقت یک واضعیت یک حقیقت یک مطلب و اون که شواهد راوی کافی نیست برای قبول خمال اصل مطلبی ممکن است ارد باشه سابس باشه جمعی اطراراتش باشه این کافی نیست داره چیه اون سپاس راوی و صفات مصدر به تنهایی کافی نیست چرا؟ چون که خیلی شاز باشه بلی آقای مولاد رو با همین فرده پرده میکنه تنها عدل امامی باشه کافی نیست خیلی رو جیه فقط نوتشی که ها اسمش صحیح بذاشتن لیکن خیلی حجت اونا اسمش سهی و ظاهر کلمات اونها شودود رو به نقل زدن اصحاب ما شودود رو به فتوا زدن و که کردم چون قدمای آیا ما فتواشون عین نقله این شودودی به فتوا هم مساوی میشه با شودود در نقل خوب تحلیل مطلب و نقطه اساسی اساسی مطلب ارتکاز زاویه است که امام صادق هم به همون اجاره ورد نه فیل علی لاری بودی این اساس اساس مطلب ام داته این مطلبی که ما تحلیل که این تحلیل ماست و الا از عبارات از خواب ما این در نمیاد به نظر میاد عبارات از خواب ما بیشتر به خاطر کلمات محقق قدس الله سره رفته اصلا محقق در معتبر فرمون ما به دنبال سلیم و سند نیستیم خبری پیش ما حجت است با یکی از دو بحث ما عمل به له اصحاب او دلالت علیه القبائن. این مبنای محقق خوب روشنشون خبره حجت ما عمل به له اصحاب یک دو ما دلالت علیه القبائن. یکی از این دو صفت باید درش باشه این خلاصه نظر مربوم محقق بر انگار خبرش نظر کمی نه بله نه خوبه یه خرابی پیدا کرده اونجا به نظر علایه حاله و البته این به نظر ما به نظر خود من عامل اساسی این که بعدها بیان بگن شهرت جازر یا کاسره همین کلام محققه انصافا این کلام محقق و سرشم این بود که علمای بعدی وقتی عملم توی فقه وارد شدم به نظرم صداش کم شد صداش وقتی عملا وارد فقه شدن در روایات ما دیدن هر فعل محقق واقعی تره خوب بقید وقتی به فقه مراجعه کردن وقتی به مبسوت و و خلاف و کتب شیخ و کتب شیخ مفید و روایات اصحاب مراجعه کردن دیدن کلام محقق واقعی تره همینطور هم هست واقعشون همینه ما معقیده همینه انصاف همینطوره بعدها هم اگر شما نگاه که امثال صاحب جواهر و مرحوم نائینی این بزرگان این که اومده اینا هم دوباره همین مطلب رو اگر مطلبی اختلافی هست اون نسبتشه به الا اصل مطلب نده و ما هم گفتیم مطلب المحقق خیلی خوبه و چیزی که ما با مرحوم محقق حالا چون محقق دوره کامل فقه رو با استدلال ننوشته نمیتونیم خیلی اون محققین استفاضه دین اما چون پس اون جواهر آمده و مبنا مبناتر نکتهی رو که ما ارز کردیم این شد اختلاف ما با این آمده این است که مثلا در مجموع جواهر مادر در طریق ممکنه سی درصد رو تشکیل بده در از کنیم ما عمله به در اصحاب 70 درصد ما عمید که اگر عکس باشه بکتر مادر در طریق قرآه 78 درصد معامل به لحس ها از معامل به لحس یعنی جایی که لحس مراجعه کردن ما شاهد نداریم بخواییم قبول بکنیم به نظر ما اون جایی که لحس قبول قبول کردن غالبا شاهد داریم اونا همین به مجرد کلمات لحس اکتفا اکتفاق میکردن خوب این نکته در قصد اونید اختلاف کجاست؟ اختلاف سر سهمی بندی اینجا هستند من خودم نظرم اینه که ما عمل به در که گیر رو کنیم و با قرائن در نیاریم چیزی حدود 15 بالغش مثلا 15 نذرا ده درصد اما اونی که ما عملا در مثل جواهر می‌بینی یا در کلمات مرقومه ناهمی مثلا در فقه ایشان یا فرض مثلا در هووزه عمر شده که تیموهاری غالبا در کلمات اینا نزدیک 70 درصد ما عمل به در یعنی غالبا رو وردن به تعبد که چون اصحاب فتفاده داره ما تعبودن قبول بکنیم لیکن انصافاً اینطور نیست با مراجعه که ما داریم برای اکثر مواردی که اصحاب عمل به قرائم وجوده اینطور نیست که قرائم نماشه البته قرائم بسیار مخفی شده بسیار پیچیده شده پس مثلا صدوق چه قرائم در اختیار شده در تقییر چه کار کرده خب انصافاً پیچیدگی داره خیلی پیچیدگی نکرد فرغل عاده پیشتگی داره. من این قبول ببنیم. لیکن نیشه پیدا کرد. وسائل پیشتر پیدا کرده. شاید مثلا در صابق این بود که برای اینها ما عمله به در اصحاب نزدیک که هفتا تا هشتا در سال تشکیل این یک نکته اشبال ما به مرگمه محقق. نکته دوم گمه این که محقق فرمود اگر خبری هم بود اون خبر معیقه. مهم این دو دوتاست. عمل و قراره ولیکن انصافا این رو هم قبول نکردیم گفتیم اگر عمل و قراره نامر اون خبر با تقلیت میکنه و خبر موجه میشه این نقطه نقطه فرق باشن یعنی اختلاف ما با مسلک مثل در حموم در یک در نسبت دلن. اون عمل به اصحاب و در در قراره این نسبت این دوتا ما به نظر ما میاد البته هست که هم کتاب تفصیلی در فرق نداره چرای ایشان یه گوره اما استدلالی نیست معتبر ایشان استدالی کتاب بسیار نافعی هم هست کتاب معتبر بسیار بسیار کتاب خوبیست اما خب نافذه خیلی نخص داره نمیتونیم ما کله تو همین کتاب هم واضحه لیکن پس مثل جواه منبال جواه ممکنه 60-70 در سادش عمله به دستان باشه بقیه ایش در مطره قرآن باشه ما معتقدیم نه ما عمل برسال در فوق شریع تسامو اون 15 درصد بقیه رو با قرائن میشه پیدا کرد مشکل نداره یعنی قرائن در بقیه به حد کافی هست اینطور نیست که نیاز داشته روشید بکن تا حالا یه بیگه جنب... اون بندی مطالب بکنم پس به نظر ما ما سه برنش در کلمات اصحار نه بود رجع ارز کردیم برای جابعیت و خاصیت شهرت عملی یکی این که به کلامات محقق باشه. دوم این که اینها فهمیدن که اصحاب ما مبانی فهرستی داشتن رو مسادر حساب میکردن اگر اون مستر شد زن سند در مستر موثر نبود همون راهی که بعد اخباری ها خیلی رو بزرگش کرد راه سفرم این راهی بود که من ارز کردم که شاید با مجموعه مطالعه در کلمات اهل نه و از همه مهمتر با ارتکازات و ایشون به این نتیجه رسیدن. که اون که اهل با ارتکازات و اغلایی به این نتیجه رسیدم. چیزا خاصی نبود. الا اینکه یک اهل سنن عدم شدوز و عدم علت رو قید صحیح گرفتن آقایان ما قید نگرفتن. آیا ها یک و جهت گرفته او چه شده دو شزو در کلمات سامه خورد به مسئله نقل در کلمات فقهای ما خورد به فتوا یعنی عمل داره باید نه نقل و از این دو نکته اساسی بگیریم دو تاست لکن واقعه مطلب اگر دقت بکنیم به نظر ما وقتی که در کلمات نگاه میکنم برخوردی با که علامه ما کاملا به نظر من میاد که نقطه اساسی همون بچه اول باشه یعنی به نظر ما کلمات محقق کاملا معصر بوده و کلمات محقق هم همون نقطه یه دومه نه همون یعنی احساس کردن روایات ما فتاوای ما یه جور خاصیه غیر از اهل سنده به مجرد راوی حل نمیشه مسئله. لیکن به نظر ما محقیقی مقدار تند رفته ایشون گفته خبر معاید میشه اما انصافاً وقتی به کلمات اصحاب نگاه می کنم حتی قدما خبر رو به عنوان دقیقی لحظی بوجهت میدونن بله اون خطی که در اصحاب ما عقل گرا بودن عقل متکلم بودن حصولا متکلمین اصحاب ما خبر رو حجت نمیدونستن اینا دیگه مطقیقی نیست که ما متعبده به کلام محقیق باشیم ما قدمت های محقق رو از کلام شما که خبر محیره در این رسل سید مرتضا خوبه خوب در میکنیم کلام محقق که اصحاب به قراهن عمل میکردن و خبر محیره بوده بله این برای بل بل تفسیر مبنای سید خیلی خوبه راست؟ این برای تفسیر مبنای ابن, ابن ادریس خیلی خوبه, خوبه راست؟ این مطلب ایشون فرنده حالا چه دیدیس هم حری بوده از اینا شاید محقق تحت تاثیر کلمات اینا واقع شده این کلام محقق برای کسانی که از قدما اصحاب ما منکر اوجده هرندن خوبه حرف خوبیه اما این واقعیت نداره دید زیادی از زیاد از قدما اصحابا حتی شیخ مفید ظواهر تفاوالش شیخ مفید کاملا مشترکی ایشون خبر رو با به اصطلاح با اون شواهدی دیدن دید. فطحه شیعه بوده هجهت می گرسه قومی ها که قطعا هیچ جای شبه نداره قومی ها که بر فرض هم اگر فرض و قرائم به بود خود خبر رو هجهت می گرسن نه مضمون رو که خبر معهیت بشه و انصافه هم خود ما هم حق رو در اینجا به قومی ها یعنی حق به انصال شیخ مفید می دیم. انصافا اگر عمل بود و حراین بود خود خبر خود جهد میشه میتونیم به اطلاقش تمسک کنیم میتونیم به اگر محکوم داشت به محکوم شرش عمل بکنیم مراد خود خود خبره نه اینکه ملخص خبر و مضمون خبر رو بگیر بقیق برمونیم انصافا حق در این مقام با امثال کلیمی با امثال شهر مفید با امثال گومی ها با سید مرتضی میگه ما و سال سید مرتزا قبول این دارم جمعنی خلاصه کل مطاله مطاله دیگر این که اصولا با مراجعه قطعی یعنی هیچ جای شبهه نمیذاره ما به قدم های اصحاب مراد ما از قدم های رو تازمان محفظ مراجعه و ولو فوقهای بعدی قطعا این مبنی اهل سنت تو جد تحبودی خبر صحیح باشه قطعا دیگر موجود نبوده این قطعی ما یک نفر از قدما رو نمیشناسیم که این رو که سنان بعد وبعد صاحب مدارک آغاخویی راه ر که خویی رفتن که این چون ثقه ما خبر را تعبد قبول بکنیم قتعا در این قدمایی که کتاب‌هاشون پیش ما موجوده یک نفر قاهل به این ری نداریم یک نفر نه ل مثلا چند نفر وقطعیس این مطلب یعنی ما هیچ فقیهی از گذشتگان یا محدثین داشته باشیم که بیان بگن ما خبر رو نقد میکنیم که راویش سقه باشه به این معنی این قفیل تنیز نه اینکه این, این مبنایی رو که بعد ما بعدم اددهی مسرم پشه سر شیست دادم و, و این مبنا قطعا پیش گیسی از قدم اصحاب ما وجود نداره هیچ در این هم نداریم ادنا شرحهی هم داره. مطلب نداره. مثلا ما مثل از همه شدیدتر تر نشازان داریم که کاملا با اصطلاح اهل سنت آشناست کاملا با اصول حدیث اهل سنت آشناست یعنی فضل نشازان چند بار هست کردم واقعا وقتی ما بعضی تح... چون نه بسید خلمات رو در تحقیق احادیث اهل سنت تو جدل وقتی که با اهل سنت در میرس. وقتی نگاه میکنی چیزی در حدود باید با بخاری انسان حس این قدر مسلطه به مبانی اهل سنده. ولی الان هم در قدما و بلکه متاخترین من الان کسی نیمیشونم مثل مرموم فلتی نشازان خبیر بحثانی و دورتراغ و اجازات و چون بین پیش بزرگان اونا هم حاضر شده. از این خودش شخصیت علمی بزرگ اصلا خودش یک شخصیت علمی شخصیت اهلگراز با مسائل علمی متأارفه دنیای روز خودش رو با فلسفه علمی در دنیای روز خودش دیده با اون آشنا بوده. او یک شخصیت علمی است در حوزه مرحوم فضل نشازان و کاملا به مبانی اونها آشناست. کاملا یعنی آشنا بی در حد مثلا بخاری در نقادی و معرفت حدیث و مناقشه حدیث در میان حد شده. و استاد مشترکم داره چون این کتابه هم داره که فضل رو از محمد بن نیقی ها شده نرس کردن این آر محمد بن نیقی ها سه محمد بن نیقی های از غالبانی این محمد از نیقی های زهلی نیشابوری استاد بخاری است خود بخاری از این محمد بن نیقی ها نرفتون کنه از عیمه شعن احل سنت فضل در سو هم رفته. یعنی فضل در محضر بزرگان ترازه اول احل سنت حاضر شده. شخصیت عادی نیست سازد. مگر همین فریدون شاپور تو حدیث شیعه که میاد اون کارا رو نمیکنه. تو حدیث سنی این میگه کارا رو میکنه. اونجایی که با سنی در بیوفته مثلا فریدون شاپور نرضی از محمد مصطفی (ص) نرضه بده با این که نرد کردن ایشو موته محمد مصطفی کذاب است. خود فرید نرد از محمد مصطفی نرضه. اصلاً نداریم ما ما الان کسی مثل فریدون شاپور در کدیگه قدمايه اصحاب نداریم که آشنا به تمام اون البته این نداریم حسب علم ما ممکنه دهها ها نفر آثارشون ما نرسیده ما اسم اونام ثبت نشده باشه. لكن در این آثاری که ما در اختیار داریم کسی مثل فضل نشازان آشنای به مبانی اهل سنت نداریم. همین آقا اون مبانی اهل سنت در حدیث شیعه به کار نمیبرید نمیخوام نیبر. بگم دقت بگید. ما مرحوم ابن الغریذ داریم که فوق العاده است استاد این صناعت انسان شناسی در شیعه کم داریم مثل ابن الغریذ که صدم میگه من هر کی استاد هم گفت صحیح یا ضعیف هر هم دو طرف خذیر رو کرده کرد هر دو ملازمه از یک طرف نگفت هر که گفته صحیح میاد صحیح هر کی گفت صحیح نیست نه خیلی خیلی مهمه ملازمه دو طرف خیلی مهمه یک طرفش ممکن بود. انسان قبول بکنه ملازمه دو طرف رو میکنه. من ازاله در کتاب قیون اخبار رزه در تمام که واقعا روات خیلی فوق الابن حیصل مزمون این نشون میده که مرحوم ابن الولی با تمام تخصص و با تمام آشنایی به کتب و بر و رجال و اسانی محضاره باز مضمون در نگاه میده کن من کراه را از کردین روایتی که صدوق رحمه الله منفردن آورده جای دیگر ما این رواست نداریم در اون اخبار زهور در باب تااروز از اماغذان از خیون روایات ما در تااروزه مثلا این روایت با کلیه روایات ما در تااروز کلن فرم میکنه این روایت ایست که بیشه ای که بیاد تااروز روز سند و این حرفا بررسی میکنه یا روحوک بررسی میکنه به اسطلاح موزیمه اون تضادهای داخلی رو بررسی. به جایی که بیاد دن و به اون بو واقع میره به میره. یعنی به جایی که دیگه این صریح صحیحه اون صحیح نیست این اصحه، میاد خود هو رو بررسی میکنه که تعارض در چه حکمی واقع شده این از دایره احکام الهی جزو احکام نبوت جزو مقام پیغمبر جزو امام اصلاً به اصطلاح روز به تضادهای داخلی رو میاره این تنها راه ما غیر از این اصلا ما در باب تعارض به این مضمون از اندزا اومد محسرم از امام رضا و محسرم در کتاب قویون اخبار رضا. سلو وقتی را باید میاره میگه استاد ما ابن الولی سیع و بود در محمد ابن عبدالله مسمعی راوی این حدیث بینیم ابن الولی در چطق قوائل حدیثی میگو که این آقا سعیفه کان شیخ و ناید الولی فی و محمد ابن عبدالله مسمعی راوی را در روای ادلا قرآتوها قرعتو علیه همین کتاب رحمل سعده ابن عبدالله فلم یونکرها علیه فعدرشتها همونم دقیقا این سعدم ما اینو بزرگت این شخصیت های ما در معرفت الحدیث و همین استلاحات حدیثی و آشنایی ما نداریم بله شاید شاید ها رو شاید شاید مثلا ابن قزاری اگه این کتاب رجال مالقوم باشه شاید این معنا رو اجمالا داشت اون واضح نیست شاید مثلا بی این خوب دقت بکنیم ما در میان قدما ی اصحاب از, از اون های و علما ها و محدثینی که کتاب هاشون داریم الان در دسترس ما موجوده حتی یک نفر نداریم که به این مبانی حدیثی به این معنا رفته باشه یک نفر پس مثل صاحب مداره فقط در حدیث صحیح عمل بکنه یا مثل هست استاد فقط در حدیثی که را بیسته بست ما یک نفر نداریم نه اینکه که اطلاع نداشتن هم توضیح دادیم ما در میان و قدما کسان داشتیم که کاملا به این موانی مخلط زدن از فضل نشازان یه بحثی در قولو تحصیب داریم چون یه روایت هم بخاری عبوده فرد نشازا معاصر با بخاری فرد نشازا اون حدیث رد میکنه بخاری اون حدیث رو او نه اینکه از بخاری درمی کنه از استادش اون حدیث رو رد میکنه به یک نکته ارشدن در شروع بخاری ائمه از علمای بزرگ حدیث اهل سنت به بخاری اشکال گرفتن دقیقا همون اشکالی فضل و شازم هم. و که فضل نشازا میذارم در یک و اون ندانی خودشه هر من عرض نه اینکه چون جوی گفته در شده نهی که مثلا ما بالده ما همه هستیم یکی چیزی به ذهن من میاد که فرزنشتادان در اطلاع در مقالی حدیثی مثل بخاریست هم مثل کلون اما شما وقتی بینید که حدیث شیعه این کاریشون بحث شیعه میکنه نکته اینه دنبال این سری یا سر بودن نمیره از کردن مسئل این مطلب ها در کتاب کشی وقتی مشایخ فرزنه همه میکن یکی از مشایقش محمد بن سنانه و باز در کتاب کشی نمی کنه که فردان شازان می گفت که کذابین مشروع پنج شده هم محمده دن سنانه خب این دو تا با همه به دیگه از اون وقت کذابونش برو از اون وقت باید از دو حدیث نمی کنه دقیق میکنیم این معناش چیه؟ این معناش اینه که همسال فردان شازان با اطلاع دقیق بر اون مبانی اینا احساس کردن حدیث شیعه داره نقطه دیگری است اون مرامه برای حدیث شیعه کافی نیست شما وردین بعد, از, این بعد از, از دنشادان به س ساد صد و خورده ای سال مرگون و وقتی میخواد مریال حدیث سوریگه میگه و جمعی امافی مستح رجومه در کتب المشدوره علیه المعول و علیه المرجع مثل که زال و صلاح دهریزم و کتاب و چهار با بهمن سرزم چه که میکنه اسم دنه؟ و غیر زاله که اصول و قصول این تغییر تحبیر خب معلوم شد که قلمای ما بزرگان ما غیر از مسئله یه راهی راوی مصدر را هم حساب میکردن خب این یک حساب خاصی است امده سنت این مردان ندارن از اهل سنت دنبال این مردان نیستن توی همه سنده نیست ما مثلا هم شروعی ترسناعت حالا رجال معروف فهرست و رجال انصافه نجاشی نجاشی میگه کانه ها در شعی صدیغندی هم در ابن عیاش میگه این در یهیشون یه میگه در همون فضل شیبان در ابن عیاش میهه صدیغندی و روالدی و سمیعتومن کسیم الا همین رئی تو از خواب نایوزر نکونه و فتح جنب تو هم الا به واسط از این بینی و بین اگر کسی معنای خودی به خبر استفاده داشته که به شما واسطه رو واسطه به داخل خودش داره میگه آها ضعیفم خودش میگه این آها من از میگم واسطه داش نخوام. دقیقاً این دیگه من مسائله رو از مال همان صدر اول مطلبن. ولی بزرگان ترازه اول ما از اون بزرگتر نداریم از حدیث در زمان استباهان نرمه هستند ترجیح نکرده بس یه استباهان استباهان مورد از واسطه مشایخه این هم خودش یک بوده که اگر یک استادی شیخی که قبول بشه به عنوان شیخ الحدیث بوده غزی. این اگر ندرکه ولو زحف داشته باشه اون زحف رو ما برمیداریم چون ایشون شعری که میتنه ملاحظه کرده حساب کرده با حسابی که او داره ما برمیداریم. و وقتی میدیدن که مرحوم کلینی در کتاب کافی از سهل نزیاد کرده با این که واسه شهادت های متنده راجع به زرفی ایشان هستند توی شهادت, شهادت برای توسیقیشان هستند شیخ میگه ایشان سبت بلا شهادت زرف بیشتر و از نس محمد نالی سیرتی ابو سومینه نمیم که خب خیلی شهادات کلا بر نفی اوزد حتی بسیده کذاب مثلا ببینه که دارید اینا می گفتن درست تمامی مطالب درست باید چون کلین نفع میکنه و کلین از خدم به تحبیر نجاشی او ثب و ناسف الحدیث و اثبت و همفیر درست بگونه یعنی حالا که آمد به کلینی این کنه کلین آت هزارتون که من می فهمونه این که میگه او ثب و ناسف الحدیث کاملا مراهات میکنه و دقت میکنه که اگر ازیز نفر هست نقطه ای باشه که قطعاً اون حدیث خابل قبطیه هسته این سر تقدیر مثل نجاشیست ولیه نجاشی خودش سرنبزی را ترزیف میکنه و نقلم میکنه نجاشی به این که کان احمد اشعری یکون شهد علیه بلگلو و بلگلو و بلگلو بلگلو بلگلو بلگلو اخرج اومد خب نجاشی نمیتونه بگه که چطور این آقا اونساب و ناسب حدیث حدودی یکی هشت کتاب کافی الان از سهلیم زیاده یه نسبت بالاییست یه نسبت کمی نیست مثل دو دوچاری دو باید از نزدیکی 17 نزابه باید یکی در کتاب کلویی کمتر از سهلیم زیاده از سهلیم زیاده دقت بکنه و پتر هم عرض کردی مرحوم نجاشی این مسادر نگاه کرد خود او سرنده زیاده میشنسه خود او کافی رو دیده و من از داره میگم یا او و ناسفل حدیث و اثبت منفید بکنیم یعنی های مرمون کلیمی متع... نجاشی مطالب متع... نیسته قطعا میگنسه پس بنابراین خوب دقت بکنیم ما تا اونجایی که دیدیم در میان قدما حتی یک نفر ندیدیم قادل به حجید تحبودی خبر باشید به خاطر سفا منحسرن از سرم به خاطر مشهور بینه به اصطلاق قلم سنی ادالت بود به خاطر آیه نمن و آقای کویی و ادهیش ها سنی هم باشن کمتر به ساقت. البته از باید آقای اینه که این حجیت اغلایی شاره امزا کرده احضر سنن حجیت و اغلایی نگفتن و شارع شاره ابتداعا تحسیز کرده چاره به ما دستور داده شما خبر هر از قبول کنید. این دو تا مبنا قبول خبر عقل تعبودن و قبول خبر صرف تعبودن ما در این مساده که فعلا داریم فعلا در اختیار ماست در هیچی یک از کتب و وجود نداره بله این هست که اگر به اصطلاح عملی دروایت شده حالا یا مسترش بوده یا استاد بوده یا جهات دیگه دو مبنا به بین ما بوده یک مبنای کسانی که خود خبر رو حجت می دونستن. که بیشتر قومی ها و حتی امثال مفید و امثال شیط و امتایی دسته سید مرتزا مزمون رو حجت می دونستن. خود خبرم هم حجت نمی دونستن. که از کردن کلام مرمون محقق در معتبر به این نزدیکه انصافا کلام مرمون محقق چندان دقیقه دقیق, دقیق نیست این تا اینجا راجع به این مطلب ازن این مطلب که آیا شهرت جادر هست یا نه او سنن بده در ما مسئله درست نیست چین چیزی از هم مطرح نیست چون این مبناه برای نصیحون حدیث رو ضعیف بدانیم و شهرت رو جادر بدانیم یا اون حدیث رو صحیح بدونیم حجیت بدانیم و شهرت از حجیت بندازه اصلا حجیت بعد از ملاحظه مجموع قرائن نه فقط سفات راوی این غلط است، اصل غلط اینجاست و این تفسیر مبناش از توضیحاتش را از کردیم و انصافش مجموعه شواهد معید همین مطلبه که ما رجوع میکنیم در جمعی روایات به قرائن البته در اده از موارد با مجموعه قراهن خود خبر ثابت میشه در ایده از موارد مضمون ثابت میشه خبر رو با, با لفظش میتونیم ثابت بکنیم اما مضمون رو میتونیم با شواهد ثابت بکنیم و این شواهد رو هم یه دستبندی کردیم چون دیگه آخر وقت من سریعا عرض بکنم از کردم چیزی که الان محط نظر ماست سه بخش یکی سذور خود خبر یک مضمون میشه و یکی متن مسائل دلالت بحث سالی سه قرار مورده و در هر سه این مطلب سه مرحل این سه محور وجود داره یکی محور آغلایی یکی محور دینی و یکی محور مذهبی یعنی پیششینه این جمعه دیر نهایی جای جایی گفتنه شده مونت وزیادش هم در سه محور وجود داره محور آغلایی آقای خونی اینجا مستدرم که آغلا خبر سه داره دو محرر دینی اهل سنت غالبا و اندامه به هستیم که از نظر دینی این جور اون خاصون سه محرر شیعی و مذهبی تا به اصطلاح در مذهب ما اینها بیشتر اخباری ها غالبا که روایت آمده که اگر خبر در کتبی باشه که مال اصحاب ما باشه و معلوم باشه حجته این سه تا محرر و از کردیم حق در مباحث اینه که هر ثابت نیست. نه به حجیت عقل ثابته، به این معنا که به ثابت راوی کاری باشه. نه به آیه مبارکه تمامه و نه اون روایاتی که عامله گفته شما هر روایتی رو که اصحاب نقل کردن و کتاب قابل قبول باشه، شما اون رو حجت دیدین تا این هر سه مبنا ثابت نیست. بله هر سه مبنا خوبه به عنوان جمله قرآن وصابت درابی، درابی، وجود در آبین ادالت در وجود رواز در کتب مشهوره اینا ها هر سه خوبی هم هر سه شو. اما اینجا ما تعدد داشتون <تصفيق> به یکی از این قرائن که الان هرس کردن در طول اسلام شده هیچ کدومی ثابت نیست این خلاصه خود و قرائن دیگه هم هست انصافت مثلا مطابقه کتاب هست مطابقت که با شواهد تاریخی هست مثلا نسبتنجی فضوار و قضای اصحاب در مطم رواید باشه یعنی ما مجموعه شواهدی داریم مثلا رواید در دوسته کتاب باشه یا در یک کتاب باشه اون یک کتاب کافی باشه فرمون خواهیی یک کتاب مثلا تحضیح باشه اگر رواید فقط در کافی باشه چه لفتا کابه قبوله من با مثال ما به خاطر لفت کتاب اما اگر ما منحسن در تحضیح باشه در نستم اصلا نحوه و در این مسائل خود قدر بفهمه برای ما ابهام کمتر وجود داره برای قبول داریم ما یک جای ابهام داره و به تعبود برمیگرده برای ما اصولا سه حجیعت خبر و مفرح کردیم اصلا یک نظر بقوله من ریشهی بقوله اصطلاح فلاسیف چون اینجا برده درست نیست شبیه برهان لیمی ما دنبال این اصلا چرا خبر آمد؟ چی آمد؟ سومنی ها چجور پیگیری کردن؟ ما چه کردیم؟ ما مبانی مختلف اصحاب ما، کوفیها ها مثلا، گمیه ها،, ها، اینا را همه رویش پیدا کردیم. دیگه جای ابهام خیلی کم داره، ابهام داره. و عرضم کردیم انصاف قضیه. اگر این شواهد با هم تا پیدا کنه خود من بیشتر تمایل به شواهد مذهبه. اون سومی اما خب هستن ادهی مثال رفوی شو رو شواهد شبایت و اقلائیه و ساقت راویی روی ادالت رو شبایت دینی بیشتر کار میکنن پس بنابراین سه تا محور هست سه تا شاهد هست سه, سه جور هم قادل داریم البته وسطیش بیشتر در اهل سنت و اولیش هم در اهل سنت زیاد نیست هم در شیعه زیاد نیست که آره یا خویی دو قومی در اهل سنت خیلی زیاده ادالت باشه سومی هم بین قومی ها از قدم ها و اخباری ها از متعذید ولدا سبور هم ده و جمعی امافی مستقرش رو در کتب المشهوره علیه علیه المعرض البته این توضیح من چون دارم میکنم به ذهن من چون نهی خیلی در این مساده رو جدا میکنم چون ما با بررسی که فقیه کردیم قطعا به این نتیجه رسیدیم لیکن چون در کلمات از حال از مشایخ هم نشیدیم احتیاط میکنیم به ذهن ما اینه که باز هم صدوق به این احتفا نکرده خود دقیق کنیم اینطور نیست که در کتاب من لایتزار جمعه امافیم در کتاب مشهوره باشه بله ادهیش هم از کتاب غیر است. است حتی ممکنه از اهل سنت باشه. و در صدوق به اونها ایمان آورده این نکته این نکته خیلی مهمه بعد میگه و مافی و حجت بینا بین الله تمام کتاب این ذاته در میکنه پس دو تا ضابطه در مقدمه فقیه آمده یکی اینکه جمیه اروایات از کتاب مشهور است یکی اینکه جمعی کتاب حجت تا اونجایی که من کتاب رو با دقت نگاه کردم انصافاً زابطه دوم سرکنه میکنه. بله در کل کتاب فقی شاید من سال پنج پنجشیش تا روایت که این زابطه دوم هم سرکنه اونم بخاطر می خودش گفته میگه برای آن روایه از سرکنی یا حکم چند خودش گفته یه روایت از محمده نعبوم کلی در باب شهادات نه مقدر ردش ماما و قدره و محمد و کلی کلی چون معارض گرفته روایتی و از سفار از امام و از سکری میکنه میگه من بیگه این رواست عمل میکنم برایات کنین عمل نمیکنم پس بنابراین اونی که من خودم فهمیدم از کتاب فقید اینه جمعی و مافی حجتون بینم و الله ولو به سیغه رویه باشه اینه که میگن که اینجا بسیغه رویه هست اون باز هم حجت کنده پس لکن من به ذهنم رسیده خیلی از این رویه های ایشان از مصادر غیر مشهور است حتی ممکن از اهل سنت باشه پس از مصادر مشهور نیست اشاره هم کرده خود دو آنون رویه لکن هست از مسر مشهور نیست لکن هجل هست این روش سوم پس ما سه محور دارم در محور مضمون هم انز کردیم یک کسانی که میگن ما مزامین و آیات و روایت آیات قبول میکنیم که اقلایی باشه شواهد علمی تعییدش بکن این زمان ما تو این نقل روشنفکر مذهبی ما زیاد شده دو کسانی که با شواهددینی قبول میکنن، ظاهرا مرهوم یونس ابن عبدالرحمان ها ظاهرا بیشتر نظرشون رو این بوده اما اون ممکنه شواهددینی رو قبول خبر برگرده به اولی بسه. و سه شواهد مذهب فتواه مذهب این هم زاهد سید است. این کسانی که به مذنون این سه تا مبنای مذنون مال کسانی که خبر قبول ندارن کسانی که خبر به قبول ندارن یا شواهد علمی و عقلی یا شواهد قرآنی قرآن و سنت یا شواهد مذهب زاهد سید مذهب شواهد مذهب در محن هم همین سه شواهد بررسی میشه که سابقا هم توضیح دادیم و به نظر ما این است که در این سه مرحله ما در هیچ کدومش در نه مرحله مجموعه میشه در هیچ کدومش تعبد خاص نداریم. لذا فقیف به نظر ما باید مجموعه این امور رو حساب بکنیم. هم در ناهی صدور، هم در ناهی مد و هم در ناهی مضمون و فتوا و هم در ناهی مد. مجموعه شواهد تاریخی، علمی، شواهد قرآنی و شواهد مذهب و تلطیبی بن ها مجموعه اینا رو حساب بکنه اون وقت گاه بعضی شواهد زیاد داره نظر خود من شخصا شواهد مذهب مقدمه مگر مثلا شو عبارات استاد من شواهد و اغلایی رو مقدم در ظهور در مضمون همینطور اذه شواهد مضمون شواهد کتاب و سنت مقدم می ما به ذهن میاد که اینجا جنبه سزموزه بیشتر قابل قبوله با مونی که شواهد مزمونی رو به لحاظ طایفه حساب بکنه و مذهب حساب بکنه متن هم همینطور در متن اونی که مرغوب‌تر در متن بین فقهای اصال ما بوده اون رو قبول بکنیم نه اون که مثلا با شواهد لغوی ها به شواهد لغوی برمیگردی. اما ممکن یک نکته داشته باشه که متن متن به اصطلاح شیعی باشه اون متن پیش ما امثله هم در احادیث هست دیگه پیدا ذکر نمید این راجعه به جابریت و کاسریت. اینشانه فردا اشکال اخبار مروازت رو متعرض میشه که آنون ترخیر ما متعرض شده و نسال الله علیه محمد و علیه الدوح. الله فردا ممکنه دو روز دیگه باستن. چون ادله نافی حجیت رو بیاریم. چون آزتا مال نفی حجیتی.